Thank mm -hmm. you. چهارم سر این پرده که شما در تالار موزه برای من شرح دادید خانه های راایتی را میگویم سه سال کار کرده بود صدها تر برای آن ساخته بود هیچ در قیافیان آن پیرمرد دهاتی دقت کرده اید هیچ میدانید چقدر سادگی چقدر ترس و وحشت در آن نهفته است این یک پیرمرد کارکشته کار و روشندلی است در طی عمر او چند شاه بر تخت نشستند و رفتند دو سه مرتبه قبله عالم را به چشم دیده است خودش با کلماتی نظیر آنچه گفتم پیرمرد را معرفی میکرد شاید بیست بار خطوطه صورت او را عوض کرد ساعتها در جنگل های مازندران در آن کرد صبح زود در بهوه های ظهر تابستان زیر باران، اول شب در مهتاب و شبهای تاریک که آسمان پوشیده از ابر بود یک بازه زمستان که در مازندران برف باریده بود به آنجا مسافرت کرد تا جنگل را در جامعه سفید تماشا کند گاهی چند تا درخ را از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی می کرد تا بهترین حالت را دریابد. اگر میدانستم که برای نقاشی آنقدر باید زحمت کشید، هرگز قلم او را به دست نمی گرفتم. من اینطور ساخته نشده بودم. به من کار کردن یاد نداده بودند. من احتیاج نداشتم به اینکه کار کنم تا روزگار بگذرانم. دیگران بودند و با میل و رقبت همه کارهای مرا را پدرم شعاری داشت هیچ وقت کاری را که دیگران می توانم برای تو انجام بدهند خودت دنبال نکن می گفت کارهای بزرگتری هست که از دست ما برمیآید. اما از من هیچ کاری بر آمد. از همه بدتر این بود که من قدرت تشخیص هنر را از ابتزال داشتم خودم بیش از هر کس دیگری احساس می کردم که این آن چیزی نیست که در جستجویش هستم نظر من خیلی عالی بود اما آنچه از زیر دست من از آب در آمد مبتزل و بیجان جان و بی جنبش بود و همین مرا از ادامه کار باز می داشت همین شد که حوصلم سر رفت از زندگی خسته شدم از زندگی در پاریس بدم آمد سفری به ایتالیا رفتم با توسیهی که از استادان نقاشی خود در پاریس تر دست داشتم و همراه سرهنگ آرام که آن وقت برای بازدید وضع محصلین نیروی دریایی در روم به سر می برد به آتالیه های چند نقاش بزرگ ایتالیا سر زدم. عظمت هنر این کشور روح هنرمندی که هنوز در مردم این دیار باقی مانده در من تأثیر معکوس گرد من زیر بار این همه عظمت کمر خم کردم روزی پیش یک نفر نقاش بزرگ ایتالیایی به اسم استفانو رفتم همین که مرا دید پرسید شما ایرانی هستید؟ وقتی جواب مثبت شنید شرحی در تمجید استاد گفت و بعد از یک جوان دیگر ایرانی به اسم خدا داد که به کمک استفانو توانست در مدرسه هنرهای زیباث کند صحبت کرد این همان پسرک زردنبویی بود که من به او اشاره کردم استفانو یکی از بزرگترین نقاشان دنیا بود و پردههایش به قیمت های گزاف در جهان به فروش میرفت عظمت هنر ایتالیا و کلمات ستایش آمیز بزرگترین نقاش دنیا از ماکان کوچکترین مقاومتی را که در من وجود داشت از بین برد و امید مرا مبدل به یهذ یاد ملاقات با او افتادم آن منظره را موقعی که نقاشی هایم را در دست و یکی یکی تماشا میکرد از مد نظر گذراندم وقتی آنچه را که درباره او به پدرم گفته بودم به خاطر آوردم خجالت کشیدم این آخرین ضروت مرواداش که تصمیم خودم را بگیرم شکی نداشتم آنچه استاد در تهران به من گفته بود درستتر بگویم آنچه نگفته بود درستتر میآد من ژن یک نقاش هنرمند را نداشتم و موایت اجتماعی که در آن می زیستم، قدرت و پشتکار را از من گرفته بود این را ادراک کردم اگر او آن روز به من گفته بود شاید زندگی آرامی داشتم و آرام بودم نگفت و من این گناه او را نتوانستم عفو کنم با وجودی که به پدرم نوشته بودم که تصمیم دارم شش ماه در ایتالیا به و درس بخوانم پس از دو هفته به پاریس برگشتم و نامه‌ای به پدرم نوشتم که امروز هم وقتی به یاد آن میفتم برایم دردناک است پس از استاد نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود هر وقت بیچارگی خود را در آستانه ای او احساس میکردم خوشم می آمد که سرم را روی شانهٔ پدرم بگذارم و بگریم پدرم مرد عاقلی بود و گمان میکنم قبل از آنکه مهر مرا به دل بگیرد اصلا مزه اشق و مهربانی را نچشیده بود او فقط در فکر آینده بود و میخواست مرا خوشبخت بداند در یکی از هایی که در سال سوم اقامت خود در پاریس و یک بار پس از آنکه پدرم کمابیش از وضع زندگی من از نامی ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدهم و حقش نبود که به فرانسه بیایم و چه بهتر میشد که در همان تهران می مندم و با یک زندگی عادی سر میکردم. به او سریح و نوشتم که آنچه نقاش معروف تهران درباره صنعت نقاشی من اظهار عقیده کرد کمابیش نزدیک به حقیقت است. اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود وقتی از روم به پاریس برگشتم نشستم کوشیدم تا آنجایی که ممکن است فاجعه زندگی خودم را به او حالی کنم برایش نوشتم که در کارهایم پیشرفته زیادی ندارم و نقاش هنر بسیار است و من تا به حال نتوانستم رضایت استادان خود را جلب کنم و میخواهم به ایران برگردم و او چه سلاح میداند؟ البته معلوم بود که تمام ناهمواری های زندگی پرتلاتم خود را در اروپا توانستم به پدرم بنویسم اما باور کنید با وجود این تا آن حدی که از دستم برمیآمد کوشیدم صادق باشم نامیه که در جواب گرفتم خیلی یحز آور بود پدرم در جواب نوشت که او در زندگانی جز سعادت و رفاه من هیچ چیز دیگر نمیخواهد و اصلا میل ندارد برای آینده من نقشهای تر کند چه برسد به اینکه دستوری بدهد اما شنیده است که سرهنگ آرام که از هر حیث شایسته و آراسته است و حتما آیندهی درخشانی دارد، تقاضای زناشویی با من را کرده است. اگر او بداند که تنها دخترش نبا سرهنگ برکه با هر کسی که بخواهد زندگی خوشی خواهد داشت دیگر آرزوی در زندگی نخواهد داشت و میتواند با دل راحت بمیرد. این نامی پدرم را از زندگی بیزار کرد. من در چه فکرها ب من میکوشیدم به او حالی کنم که بی استعداد هستم و دارم از این نادانی و ناتوانی رنج میبرم و او برای من شوهر انتخاب می کرد. دنبال پناهگاهی در این زندگی پرآشوب میگشتم. میخواستم چیزی پیدا کنم که خودم را به آن بچسبانم. بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من دست داده بود سپری شود. رفتم و جوانکی را که استفانو در روم او را به زبان آورده بود پیدا کردم. اما این کار دشواری بود. در سال دوم توقف در پاریس او را در مدرسه هنرهای زیبای پاریس دیده بودم می شناختمش نامزاده ملوسی داشت ولی مدت ها بود که دیگر در این محیط دیده نمیشد. از هر کسی سراغ می‌گرفتم جواب مشخصی به من نمیداد. یادم میآید که وقتی از سرهنگ آرام احوال او را پرسیدم گفت این از آن دواتشه است از محصلین برلن هم نامتر است با اینها شما چه کار دارید اغلب از محصلین ایرانی مقیم پاریس او را منطقه نمی نمی‌دانستان که کجا می میشود او را پیدا کرد و یا میل نداشتند درباره او اساره اطلاعی بکنند بسیاری از پرسش من تعجب میکردم و چون از خیشاوندی من با سرپرست موعصلیین نظامی اطلاع داشتند تصور می‌کردند که من به قصد بدی از احوال او تحقیق می کنم. پس از یک هفته بالاخره او را یافتم در رود لالاوین مارن پاس منزلی گرفته بود موعصلیین ایرانی او را خوب می شناختند. اما هیچ کس میل نداشت علنا درباره او اساره کند این جوان بلند و باریک با وضعه آشفته تنها کسی بود که با چشمهای عشق زده به من نگاه نمیکرد شاید برای اینکه دختر سالم و ملوسی مانند خواهر مهربانی از او نگهداری میکرد شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود را در آغوش مرگ میدید آه چقدر دلم میخواست امروز که شکست خورده و وازده شدهام او را میدیدم یقین دارم که او مرا باز سر شغل میآورد و شاید راه نجاتی به من نشان میداد آخ چه خیالات خوشی این پسر سرگرم مبارزه بود دائما از وقتی که خودش را میشناخت می زد و میخورد، خورد امواج زندگی او را از صخره به صخره دیگر پرتاب میکردند اما بیتاب نمی شد از دشمنهای سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگر را تحت شعای این کینه توزی قرار میداد میدانم که مهربانو هم و یار با وفایش فقط شیفته این اراده سخت و خیره سری او شده بود. او را خدا داد و من نمیدانم چه افزونی به کار برد که من دردهای زندگی خود را به او فهماندم و او توانست خودش را در زندگی من جاده دهد این جوان را کبی پروه صحبت می کرد تا انجا که گاهی بیادب می شد. اما طرز بیانش زننده نبود. هرچه بیشتر حقایق منحوس زندگی من را به رخم می ک وقتی به او گفتم که استاد مکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه او را به پدرم معرفی کردم بیرو در ویسی گفت همین بزرگترین دلیل نافهمی توست تصورش رو بکنید من به هیچ کس پر نمی دادم که با من اینجور صحبت کند آنها دیگر جوانانی که به اندازه پرکاهی در نظر من ارزش نداشتند همه با یک اشاره من چند ملق می زدن اینها آدم نبودند و من هرگز به آنها اجازه نمیدادم که از فاصله زیاد قدم فراتر بگذارند به علاوه، رفتار من با آنها رفیقانه نبود. در صورتی که این جوان لاغر و بلند در همان نخستین روزی که پس از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم، نافهمی مرا به رخ کشید. من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمناک شوم. چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی جواب بگویم. به زحمت خانه در مورن پاس پیدا کردم. در طبقه ششم زیر شیروانی منزل داشت. نصف بیشتر اتاق را سقف مورب گرفته بود و از کوچکی نور به آن میتابید. تا چشم کار میکرد بام های پوش و دود کش از دریچه دیده میشد. روی دیوار رشته های تیر رنگی که جریان آب باران باقی گذاشته بود به چشم میزد. ساعت یازده بود. چون شنیده بودم که در خانهاش کار میکند پیش از ظهر رفتم اما خودش خانه نبود. نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر را یک بار دیده بودم. اما با هم آشنا نشده بودیم. صورت‌های مشکی های قزال داشت. خیلی خوشگل نبود اما صورتش مثل یک پسر 18 سال زنده و شیطان جلوه می کرد. اندام چالاک و چابک او آدم را جلب می‌کرد. او از نخستین دخترهای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند. پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت. در فاکولته پزشکی پاریس اسم نوشته و میخواست پزشک کودکان شود. از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست این دختر آنقدر ساده دل بود که کوچکترین تاثر در قیافش منعکس میشد. با وجود این پاک دل تر از آن حدی بود که می نمود. من هم از آن کسانی نبودم که از او رو برگردانم سر صحبت را باز کردم گفتم آمدم خداداد را ببینم میخواستم او را به حرفا دارم. جوابی نداد فقط با سر اشاره کرد من دنبال سخنم را گرفتم استفانا امروز بزرگترین نقاش دنیاست. از خدا داد احوال پرسی کرد. آمدم کارهایش را ببینم. خدا داد که دیگر کار نمی کند. چرا؟ مربان و گیرایی داشت. مانند سیمه تار با کوچکترین ضربهی که به قلبش میخورد به صدا در میآمد و ارتعاش آن مدتی در هوا میپیچید. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و درپسندش را قمزد و رقعت انگیز کرد. نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت. روی سپایه یک تکه مقوا به قطع وزیری بود و من از این طرف فقط سایه آن را می توانستم ببینم. دخترک متوجه نگاه من شد و گفت همه کارهاش همین است. گفتم بگذارید من ببینم. ناتمام است. به نشان می دهم. بلند شد و مینیاتوری را که رنگ آن ناتمام مانده بود برداشت و به من داد و گفت از اینها میکشد و می فروشد و زندگی میکند. دیگر وقت برای نقاشی حسابی نمی ماند چرا مگر بورس دولتی دیگر بهش نمیدهند؟ دهند؟ نه خیر الان شش ماه است که قطع کردم و با فروش این مینیاتورها ها زندگی میکند. چرا بهش نمیدهند؟ نمیدانم چه بگویم؟ از خودش بپرسید بهداخله خداداد را میشناسند. همه می دانند چگونه فکر میکند. حتما شما را هم ترساندند. پس از مدت های این اولین دفع است که یک نفر ایرانی به سراغ او میآید مثل اینکه صدای پایش میآید به نظرم خودش است. زندگی عجیبی است حال راه رفتن ندارد با وجود این دائما در تکاپوست هیچ به فکر سلامتی خودش نیست همش سرفه می کند. دلش را هم بد نمیآورد. میگوید سرما خوردم سرماخوردگی دائمی هیچ شنیده بودید؟ همیشه خسته است. به نظرم تب هم می کند و به من بروز نمی داد. وقتی هم که برایش میماند، باید از این چیزها بکشد هرچم که در میآورد باید خرج دوا و دکتر بکند مثل پیرمرد مرد ها از بالا میآید. از دور صدای شادی به گوش من خورد مهری با کی داری حرف میزنی. مربانو مهربانو بلند شد و رفتر رو باز کرد و بلند جواب داد بیا خودت تماشا کن مهمان داریم حالا دیگر مهم شده ای؟ از ایتالیا میآیند کارهایت را ببینن خجالت بکش چه داری نشان بدهی خدا داد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای ژولیده با جعدی که در پیشانیش تاب میخورد در آستانه اتاق نمایان شد یک بسته بزرگ زیر بازویش بود پارتویش را رو روی آنها انداخته بود اول روزنامه را که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پارتویش را لبه تخت برد کرد خیلی خوشحالم که آمدید اما بگویید ببینم نه چطور جرأت کردید پیش من بیایید؟ بعد رو کرد به مهربانو و گفت، چه بیخودی میگویی؟ از ایتالیا نیامدند، شما در مدرسه هنرهای زیبا هستید، ما با هم آشنا نشدیم. لحن شاد و سمیمی او دل پسند من شد، از ته دل با همان آهنگ خندان خود جوابش دادم و گفتم، ولی بله، هفته پیش از ایتالیا آمدم، استفانو از شما و یک نقاش دیگر که گویه حالا در تهران از سراغ می گرفت. اما نفهمیدم برای چه بترسم. دوی دوید توی حرف من استفانو را دیدید؟ من هنوز یادش هستم آن یک نفر دیگر حتما استاد ماکان بوده بله؟ گفتم اگر شما هم ماکان را میشناسید؟ گفت معلوم است که او را می شناسم. اگر او نبود که من امروز هزار کفن هم پوسانده بودم راستی مهربانو دیدی که استاد نامه نوشته، بگیر و بخان. بلند بخان، بگذار مهمان ما هم بشنود. مردی به نیکی و دلیری او من در زندگی ندیدم. اصلا از هیچ چیز پروانه ندارد. نامه را به مهربانو داد. اسم استاد را که به زبان آورد چندشم شد. استاد مظهره یه اصابی استعدادی من شده بود. هرچه برای همیت و بزرگواری استاد ماکان کاندادت داشت، کوفتگی و توسری خوردگی مرا بیشتر میکرد. خاطره ی ای, ای که از آن نخستی ملاقات در حافظه من باقی مانده بود شکل گرفت و من او را که پشت میزه تحریرش نشست و کارهایم را تماشا کرد به ششم دیدم. خدا داد رو کرد به من و پرسید. میشناسیدش؟ گفتم یک بار با او روبرو شدم. ولی خوب نمیشه نسمش. گفت مهری چرا نامر بلند نمیخوانی؟ فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته ها را بخوانی. اولش اینجاست. نامه را از دست دخترک گرفت و گفت بیا از اینجا بخوان. شما هم گوش بدهید. باز نامه را به دست او داد و دختر محیوس چون شروع کرد. من آنچه را که برای تو بایست بکنم کردم و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجهی برسد. رئیس شهربانی از تو خیلی حساب میبرد. تو را به حضرت اشرف تریبیل معرفی کردند. چه کرده ای که انقدر بدنام نام اما معیوس نباش، اگر بخواهی چیزی از حاب در بیایی، نباید از میدان در بروی. ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. سب کن تا این رئیس شهربانی عوض بشود، به شرط اینکه تو جرأت خودت را نبازی. میگویند تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس، در رساله ها و های فارسی، حتی در مجلات فرانسه در باره ایران منتشر می شود کار توست، خدا نکند. خدا داد نگذاش نامه را تمام کند گفت خیلی استاد است. خدا داد خندید و من معنای خنده او را نفهمیدم. مربان و بقیه ای نامه را خواند. اهمیت نده. زندگی همین است. گاهی باید خورد. حالا نوبت کتک خوردن توست. دعویش که داره سرشکسته نکداره. نامی طویل بود. اما خدا داد اجول بود و شاید هم وقت نداشته آخرش را گوش دهد. رفته روزنامه هایی را که نخ کرده بود باز کرد. روی صندلی نشست و یکی از آنها را شروع کرد به خواندن. مهربان، نامه را میخواند و من گوش میدادم. رئیس شهربانی داستانهای تو را نقل میکرد. می‌گفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند، یک روزنامه به اسم پیکار میرسد. این روزنامه در بل به منتشر می‌شود و تو هستی که آنها را ما بین جوانان ایران در فرانسه تقسیم میکنی. خدا داد به ساعتش نگاه کرد و نگذاشت که نامی استاد تا آخر خوانده شود. از مهربانو پرسید نهار چه داریم؟ به رستوران که نمیتوانیم برویم چون پول نداریم. باید همینجا چیزی خورد. چیزی باشد که مهمانمان هم بتواند بخورد. من هم به ساعت خود نگاه کردم نزدیک یک بعد از ظهر بود. صمیمیت او در من تاثیر خود را کرد. پیش از آنکه مهربانو بتواند بر استرابی که به او دست داده بود غلبه کند و قیافه آرامی بگیرد و جواب بگوید من پیش دستی کردم و گفتم اگر اجازه بدهید من شما را دعوت می کنم و برویم با هم در رستوران نهار بخوریم خداداد گفت بسیار خوب فکریست اما مهربان و مخالف بود و گفت نه نمی توانی غذای رستوران را بخوری مگر دکتر بهت قدغن نکرده گوش نخوری خانم هیچ در فکر خودش نیست من نمیگذارم بروی به رستوران خدا داد و من هر دو خنده مهریجان جان آقات ترخ نشود حق با توست خب بگذار ببینم چه داریم روز را انداخ روی زمین رفت به طرف چمدانی که زیر تخت خواب بود آن را بیرون کشید نگاهی به آن انداخت و گفت نان کره این بسته چیست پنیر هلندی هم داریم مربا که به دست مادر مهری در تهران درست شده و دیگر مرگ میخواهی برو بگیر چایی هم که صاحبخانه برای ما درست میکند. من هم باید شیر بخورم دستگاه شاهانه است بعد از من پرسید: بازرید با فقیر بیچارها سر کنید؟" شاد و خندان جواب دادم برای سر ما هم زیاد است. راستی من نیامده بودم اینجا ناهار بخورم اما دیگر دعوت شما را نمیتوانم رد کنم. خدا داد رو کرد به مهربان و گفت: "پس بلند شو. به صاحب خانه بگو برای ما چای شیر درست کند. از این گذشته کار هم داریم. باید تا ساعت سه تمام روزنامه را آدرس نویسی کنیم و به پست برسانیم." مال ایران را باید در روزنامه های کهنه ماتن لفاف کنیم. مهرانو از اتاق بیرون رفت. همین که با او تنها ماندم پرسیدم، این چه روزنامه‌ای است که به ایران میفرستید؟ ریاف شگفزده‌ای به خود گرفت و گفت مگر شما روزنامه پیکار را ندیدید؟ حقیقتش این است که من این روزنامه را دیده بودم. گاهی به آدرس من هم میفرستادن. یادم میآید که یک بار از طرف سفارت بخشنایی به تمام دانشجویان ایرانی رسید که هر وقت چنین روزنامه‌ای رسید باز نکرده آن را فوری به سفارت تحویل دهند و این باعث خنده دانشیان شد و هر کس روزنامهی پیکار را تا آن وقت ندیده بود از دوستش مطالبه میکرد. گفتم نه ندیدم فعالیت این پسر خوشصورت برای من تازگی داشت شما کجا زندگی کردید که از وجود چنین این روزنامهی بیخبرید قریب هزار نسخه از آن به ایران می رود اقلا ده هزار نفران را می خانن. نسخه هایش دست به دست می گردد. این تنها روزنامه است که به زبان فارسی منتشر می شود و دردهای مردم را تشریح می کند. به خودم گفتم، حالا می فهمم که چرا خرج تحصیل او را دولت قطع کرده است؟